و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلام ببینم سوره‌ی لقمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ پناه میبرم بالله بذات الله جل جلاله من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنم به ذات الله جل جلاله که الرحمن بخشاینده است، الرحیم مهربان است. الف لام, الف لام در مورد از مفسرین کرام مثل که ما شما قبلا خواندیم میگن که الله اعلم بمرادی خداوند متعال جل جلاله با مقصد ازی خوب میفهمه. و علت عزیز قبلا هم خدمت تانرس کردیم که عروف مقطعات در آغاز سوره ها خاطر عزیز که هر کسی که به هر اندازی علم داشته باشه باید خودا نفیه بکنه بگه که من نمیفامم وقتی که انسان گفت من نمیفامم نفهمیدن اقرار به نفامیدن خود نصف علم است نصف علم است چرا؟ انسان هر قدر آلم شد علمش در مقابل علم خداوند متعال جل جلوه بسیار کم است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا بر شما علم بسیار اندک داده شده از این خاطر انسان در آغاز وقتی که ما تفسیر میکنیم میگم که خدا و مراد زی میفهمه ما نمیفهمیم تا انسان انسان وقت قرآن درست درک میکنه و وقتی با مفهوم قرآن درست می که توازو بکنه و خدا نفیه بکنم وقتی انسان در مقابل خداوند قرار میگیره باید خدا نفیه بکنم و من هیچ استم من الله می فهمم الله خداوند و مقصد زیبهتر می خداوندی خداوند مطال جلجاله همه که تلک آیات الكتاب الحکیم ای آیت که شما مسلمان ها می ای آیات است از یک کتاب با حکمت این کتاب است که در بین ازی علوم مختلف وجود داره که برای هر دانشمند و هر فیلسوف و هر کسی که با چشم طلب علم به طرف نظر بکنه او هدایت میشه و ما و شما امی قصه های مسلمان های نو و که در روزا ترجمه میکنیم ما شما میخانیم میبینیم که در سایت های مختلف انترنتی در باره مسلمان نو بر ما وقت صحبت میشن یک دانشمند بسیار بزرگ بر ما میگه که من با خواندن یک کلمه قرآن مسلمان شدم شما او کتابه که خورد آشوکولن که چاپ شده دیدین که مسیحی بوده که خودش رهبر کلیسا مسلمان شده چرا مسلمان شدی؟ علت مسلمان شدن خدا یک کلمه بیان میکنه میگه من در کشورهای اروپا و امریکا تحصیل کردم و چوکی های مختلف را در کلیسا داشتم من صباح بسیار عالی داشتم لکن تمام کتاب هایی که به خداوند متعال جل جالوهو نسبت میشد، شد این کتاب ها را می که هر کدام از این معلف انسانی دارن وقتی که بیبل یا انجل ها را بر ما می‌آوردن آردن می در پشت هر کتاب نشت است نام فلان معلف در کتاب های نام معلفی نشت است لیکن یگانک کتاب که معلف انسانی نداشت قرآن از این بود تنزيل من رب العالمین و وقت که داخل ای کتاب ها ما خانم ده دیگه کتاب ها تو فرق بین کلام خالق و مخلوق کرده نمیتونی لیکن در کلام وقت که میخانی خود میفهمی که ذات دیگیست که به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امر میکنه برش میگه قل بگو ای محمد والله احد خدا است. قلیه ایوه الکافرون بناهن بر پیغمبر خدا از این خاطر وقتی کسی که قرآن میخوانه به دقت میفهمه که کلام پیغمبر نیست چون پیغمبر مخاطب قرار میگیره در آیات و احیانا اگر پیغمبر در بعض جاها لغزش داشته که خلاف اصل یعنی پیغمبر آخو معصوم هستند در دین مقدس اسلام گناهی نمیکنن لکن احیانا تو میشه که پیغمبر ها یک کاری را فکر میکنه ای بهتر است لیکن کار دیگه است که از او که بهترتر است از این خاطر دهی ای قسمت اینا احیاناً تنبه میشن از جالب خداوند مطال عباس و الله انجا اهل اعما در قسمت اون نابینای که پیغمبر صلی اللہ علیه آله فکر میکرد که تو نابینا کسی هستی که آلفی لن امرائی من قریش قرآن بزرگا تو خوکستی که من همیشه در خدمتت هستم. از این خاطر حال فرصت از این هاست خداوند در می لحظه هم برای پیغمبرست هم تنبه میکنه که اینم یک نابینای مسلمان بهتر از ست مشرک و کافر و رئیس و قرائشی و به هر قوم و به هر نسبتی که باشه عزت عزیب لندتر است به این خاطر قرآن عزیزمشان امروز دواهای بسیاری از امروز در جهان امروزی است ای قرآن کتاب با حکمت است بسیاری کسا با تلاوت یک آیت قرآن یک داکتر با تلاوت یک آیت قرآن که مطالعه میکنه مطابق مسئله که خود مسلمان میشه هدا و رحمته للمحسنین میگه این قرآن عظیمشان هدایت است و رحمت است بر نیکوکارا محسن وقتی که حضرت جبرئیل امین علیه السلام به پیش پیغمبر صلی الله علیه و وسلم آمد و پرسان کرد از پیغمبر صلی اللہ علیه سلام که مل احسان و احسان چیست ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام؟ پیغمبر صلی الله علیه گفت که احسانی است که انت اعبد ربک انک تراه تو خدا را این قسم عبادت بکنی مثل که خدا را با چشم‌هایت می‌بینی یعنی در مقابل خداوند باید با بسیار اخلاص با بسیار خشو با بسیار اسلوب درست استاد شوید و همیشه انسان مسلمان 24 سات در عبادت است چطور 24 سات در عبادت است؟ یگانه چیزی که 24 ساعت حرکت میکنه سات است شما میبینین سانیه 24 ساعت حرکت میکنه و دومین چیزی که در دنیا مثل سانیه ساعتوار همیشه در حرکت است اطراف کعبه شریف است شما اگر متوجه باشین در 24 ساعت در هر سانیه در اطراف کعبه کسانی هستند که تواف میکنن بنا اندین مقدس اسلام یگانه دین است که در اینجا عبادت 24 ساعته هست. در دیگه عبیان دو ساعت عبادت میکنند، دیگر خدای خدا فراموش میکنند. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که خدا را عبادت میکنند 24 ساعت چه کسی می‌عبادت میکنه؟ کسی پرسانید که خیر شما مسلمان وقتی که خدا را 24 ساعت عبادت میکنند خواب نمیکنین گفت نه خیر ما خواب میکنیم لakin خوابم با طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنیم. از این خاطر خواب ما هم در عبادت حساب میشه. اگر مهمانی به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام شود مهمانی هم به عبادت حساب میشه اگر انسان بهنتون و درس و تعلیم خدا هم مطابق طریق پیغمبر صلی الله علیه و بانیت نیک و به خاطر که خدمت به مردم جامعه خود بکنم به این طریق درس هم بخونه درسش هم در عبادت شامل بشه اگر ازدواج هم میکنه به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام ازدواجش هم در عبادت استعمال میشه پیغمبر سام رسول خدا فرمود یکی از صدقه وقتی که شما یک کسی تان با خانمتون پیش میشین ده ای هم نیکی هست یک صحابی پیغمبر گفت یا رسول خدایره ما به خاطر لذت نفسی خود میکنیم پیغمبر صلی الله علیه و گفت اگر امیر از حرام استعمال بکنین شهوتیتون را گناهکار میشین گفت بله وقتی که شهوتتون هم در امور مثبت به شکل و طریق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و استعمال می هم شما میشه و پس انسان محسن کدام انسان است؟ انسان محسن کسی است که انتعبود ربکه که انکه تراه تو عبادت خداونده به شکلی بکنی مثل که خدا را میبینی و این لم تکن تراه و اگر توی امکانات را داری چشمای تو زیف است که خدا را دیده نمیتانی و این نهو یراک پس خداوند متعال جل جلوهو جل تو را میبینه در قسمت محسن اینجا باز خود قران عظیمشان باز تشریح تا که محسنین کی هستند الذين يقيمون الصلاه محسن کسانی هستند که نماز می و یاتون الزکات و زکات مال خدا میتن و هم بالاخره هم یقینون به آخرت و معاد هم یقین دارن در اینجا سه نقطه اساسی بر ما تشریح میکنه که محسن کس است که سه صفت داشته باشه اینجا قران عظیم شان میگه اول ارتباطش با خالق محکم باشه یعنی ارتباط با ذات خداوند متعال جل جلاله داشته باشه و ارتباط انسان با ذات خالق متعال در نماز 100 درصد می باشه از این خاطر کسی که نماز می ارتباطش با خداوند قایم است و کسی که ترک نماز میکنه ارتباط خود با خداوند قطع کرده از این خاطر محسن گفته نمیشه ان الله يحب المحسنین خداوند محسنین خوش داره تیر خوش داره کسی که داره که ارتباط با خداوند داره یک صفت است که ارتباط با خداوند داره یعنی نماز می خانه. خب کسی که نماز نمی ارتباط خدا با خدا قطع کرده و خداوند مطال او را دوست نداره از این خاطر انسان به خدا خوش نداره و دوست نداره از این خاطر قبول هم اعمال محسنین میشه. صفت دومی از این چی است؟ صفت دومی شانی است که از محسنین ارتباط با مخلوق داره و با جامعه دارن و چیست و یوتون الزکات که اینها زکات فرضی خود ادا میکنن وقتی یک انسان زکات فرضی ادا کرد و مسئولیت خدا در مقابل جامعه داره در امور دیگه هم به جامعه ارتباط می داشته باشه ما شما چرا روزه میگیریم روزه به خاطر از این میگیریم که میگیریم که ارتباط ما مستقیما با مخلوقات خداوند قائم شود کسایی که ادعای حقوق انسان میکنند تو انسان میتونه که از حالت یک انسان خبر شوه وقتی خودش هیچ وقت گشنه نبوده باشه انسان که روزه میگیره گشنه میشه انسان که روزه میگیره تشنه میشه احساس گرسنگی و تشنگی میکنه از اینجا در وجود ازو احساس پیدا میشه برای چی به انسان دوستی و به, فق... به حالت فقرا با خبر میشه از این خاطر صفت دوم محسنینی است که صفت اولش که ارتباط با خالق داره و صفت دوم محسنینی است که ارتباط با مخلوق خدا داره بنی آدم اعضای چی هستن یک یک گوهرن یا یک جوهر؟ دیگران. یک دیگرن چو در آفرینش زیک جوهرن چو عضو بدرت آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی وقتی که یک نفر به جامعه انسانی تعلق نداشته باشه و از دردها و رنجهای از خبر بخبر باشه اینا تنها انسان گفته نمیشه مسلمان خود بسیار دور است که گفته شود و محسن به هیچ شکل گفته نمیشه و فی اموال حق کل سائلی و المحروم باید باشه انسان مسلمانی که ارتباط و جامعه داره بر سوالگره و کسانی که مشکل داره و محروم هستن در مال خود یک قسمتی از مال خود بر از اینا هم باید تخصیص بده این صفات سیومی مؤمن است که با از ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا ارتباط با آخرت می داشته باشد ولل آخرت و خیر و ابقا آخرت بهترتر و باقیتر است از این خاطر انسان با خالق ارتباط می داشته باشه با مخلوق ارتباط می داشته و. دوکاری که آخرتا فراموش میکنه مشکلش چیه؟ مشکلش دیگه یه است که همیشه دنیا برای این هدف میکرده دنیا وسیله هست انسان مسلمان از وسیله استفاده میکنه اما خود غلام وسیله نمیسازد اما مشکل قوانین امروزی بشریه است که آنها انسان نساختن بلکه وسیله ساختن و خودشان غلام وسیله شدند. از دیودت ملولمو انسانم آرزوست قرآن انسان سازی میکنه وقتی که انسان سازی شد باز اونمو ساینس دان انسان در خدمت انسانیت قرار میگیره اما وقتی که انسان سازی نباشه اونمو ساینس دان و اونمو دکتر تب اونمو گرده‌های های, های معصومه میکشه و بازو میره به یک بزنسمن 75 ساله اون را نصب میکنه این انسان عادی کرده نمیتونه این گرده‌ها را که می از از شکم الطفل‌ها میکشن و ایره باز در جای مخصوص میمانند. به خاطر از او از بین نره بازور را عملیات میکنن در جسم یک انسان دیگه غیر یک انسان عادی کرده نمیتونن ایری یک متخصص میکنه یک سازیدان میکنه یک دکتر طب میکنه به خاطر چی میکنه به خاطر از اینکه ای وسیله ساخته عالم شده دانشمند شده لکن انسان نشده علم اگر در سر زنت ماری شود علم وقتی که برای انسان ایجاد غرور بکنه ایجاد تکبر بکنه ایجاد خودخواهی بکنه علم اگر بر سر مار است پیش انسان جرم میشه شه به این واسه که نفع از او جامعه برسه اینه می سبب zarar به جامعه میشه شه اینه می علمای بنی اسرائیل بودن که علمی از اینا در سرشان زدن کتاب خدا را تغییر دادند شما اگر بایبل را بخونیم لعنت میگن سر نبی سر. دیزی. او اور خدا نگفته پیغمبر خدا نگفته یک انسان نیک نگفته یک عالم و فیلسوف و دانشمندی بوده که علمی از او در سرش زده به نام پولس یهودی این خاص که عقیدی الهی رو تغییر بتد پولس یهودی یا شاول ترتوسی ای بیوز از اینکه پیغمبر خدا را معصوم معرفی کنن چون ای دشمن خدا و پیغمبر خدا بود از این خاطر حضرت داوود علیه سلام را به زنا متهم میکنن حضرت سلیمان علیه السلام را به بود پرستی متهم میکنن از این خاطر پیغمبرهای خدا را دشنام میتنن ولی علم اگر در دل زنت یار شد علم چه وقت یار انسان میشه که علم سبب توازو شد و علم انسان وقتی که انسان متوازی بود او باست تکبر نمیکنه خودخواهی نمیکنه هر کتابی را با بسیار توازو و اخلاص میخانه این کتابی که است ایرخو یک مرتبه من, من حیث انسان باید بخونم. بعد زود بارزی فکر کنم که ایچی میگه از این خاطر انسانایی که تکبر ندارن علم واضح ندارن دارن هگرچی کافر هم هستن باز هم به طرف قرآن رو میرن و مسلمان میشن اولایی که اینمی محسنینه که دارای سی صفتی هستند که با خالق و با خلق خدا و با آخرت ارتباط دارن اینی کسانه که عبادت خدا را می مثل که خدا را می بینن و اگر اونا خدا را دیدن می به این فکر هستن که خدا اونا را می بینن اولائی ای که اینمی گروه علا حدام رب به هدایتی از جانب پروردگار خود هستن و اولائی که و همین گروه همول مفلحون شان کسانی هستند که مفلح و رستگار هستند مفلح الفائزون بالجنتی و ناجون من النار مفلح کی است که فوز به جنت حاصل میکنه و از عذاب خداوند نجات حاصل میکنه یعنی های محسن دو فایده میکنه فایده اولیشان سعادت در دنیا است که در زندگی دنیا بسیار با سعادت زندگی میکنه و در زندگی آخرت هم فائز به و ناجی از عذاب دوزخ هستند من ربهم هم و هم المفلحون و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیدل عن سبيل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولائی لهم عذاب مهين. و مینانن و بعضی از مردمای که بعضی از مردمان من کسانی هستند که لهو الحد... من, الناس من کسان هستن که لهو که اینو خریداری میکنن خریداری میکنن لحو حدیث را در قسمت شرح نزول از این آیه شریف میگه که یک شخص به نام ندر ابن حرس یک کسی بود که این چی میکرد ای دید که مسلمان ها قرآن و قرآن عظیم شأن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول هستند ای خواست که مسلمان ها را از قرآن منحرف بسازند و مردم را از قرآن منحرف بسازند ای رفت به طرف امپراتوری فارس و از اونجا قصه ها و داستان های رستم و صحرا و قصه های ها را خریداری کرد و آمد بر مردم میگفت که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه های عاد و بر شما میگه بیاییم که ما بر تان قصه های و قصه های قدیمی را بیان بکرم به یه از قرآن از ایمشان شما از این قصه ها استفاده بکنین و یکی از علما که تفسیر المدارک التنزیل و, و حقائق التعویل و که به تفسیر نسفی مشهور است که ایرا عبد الله ابن احمد ابن محمود نسفی نو این مبارک می که الله و کل باطلن الها عن الخير له چی را میگن میگه الله و هر چیزی که انسان از خیر به طرف چی کنم؟ مصروف بسازه یعنی هر چیزی که انسان از امور خیر منصرف بسازه ایله هست هر چیزی که منفیت دنیا و آخرت بر انسان نداشته باشه ایله هست و اشترا را میگن اینجا میگن که خریدن میگه منظور از خریداری است که مثلا نمو کتاب ها را می خریدن یا بعضی کسا هستند که فیلم ها را میخرند بعضی از کسات ها را میخرند و خودشان در حالی که در اصل فامیل قرار دارن کل فامیل و خدا با واسطه از این چیزها گمراه میکنن نه تنها خودا گمراه میکنن را هم گمراه میکنن در مقابل ازی که سی قرآن قران عظیم شانه به مقابل ازی که سی دی تفاسیر قران بخران به و سیدی های امور مثبتی که به نفع حضور فامیل سوره بخران به عوض ازو لهو حدیث سیدی های منحرف میخرن و گمراه میسازند و یا منظور از اشتراء اینجا میگن استبدال است یعنی که استبدال باطل و حق حقا رها میکنن و باطل میگیرن به با این دزیکه از از حق پیروی میکنن از باطل پیروی میگن را میگن که این الله و حدیث است در اینجا در این آیه شریف ببینین پیشتر صفات محسینی نگفتن که محسینین چی صفت داشتن مؤمنین و محسنین یا صفت شانعی بود که اینا ارتباط با خالق و ارتباط با مخلوق و ارتباط با معاد و قیامت داشتن در مقابل از اینا کسای دیگی وجود دارن که اینا ارتباط با شیطان دارن ومینا ناسی میشتری لحول الحدیث و کسانی هستن که میخرن لحول حدیث هم. منظور از لحول حدیث بعضی بعض میگن که این امی اشعار و موسیقی های ناروایی است که اینا از او استفاده میکنن. و اللهم قرطبی در تفسیر خود احادیث بسیار زیاد داره که قرطبی یک تفسیر داره که به نام الجامع و احکام القرآن که در جلد 14 صفحه 37 از او در مورد اینمی لحو الحدیث تقریبا معلومات بسیار زیاد داده که موسیقی های است که اونا سبب گمراهی انسان میشن چرا؟ شعار مسلمان ها با شعار انگلیس ها فرق میکرن مسلمان ها میگن که قرآن غذای روح هست و انگلیس ها گفتن موسیقی غذای روح هست اونا خواستن مردم از حقیقت به باطل بکشانند و خاطر بسیاری کسانی که از این حقیقت هستند اونا هم الفاظ انگلیس ها را تکرار میکنند در حال که برای یک مسلمان غذای روحش چی است؟ قرآن عظیم و شان است وقتی که مسلمان قرآن را میشنوه با واسطی قرآن, قرآن بر روح انسان مسلمان زنده میشه بر برعکس با شنیدن موسیقی های مبتزل که در او عبیات بسیار زشت و انحرافی است روح یک مسلمان چی میشه آرامش احساس نمیکنه بلکه خسته میشه در جنت یکی از نهمت های جنت چیست که؟ وَلَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرِدُونَ میگه یکی از جن... میوه های جنت چیست؟ ها؟ لا لغون فیها ولا تأثیم در جنت یکی از است که لغویات نیست چون اشیای لغو روح انسان با ایمان هم می کشن. از این خاطر میگه در جنت لغویات نیست امور بد و زشت ولا تأثیم و در جنت گناه هم نیست چرا که گناه هم انسان مؤمنه قلبشه متزلزل می سازه و روحشه نارام می سازه موسیقی را میگن در قسمت موسیقی یکی موسیقی است که مطلقا حرام است موسیقی حرام اونمون موسیقی است که با وسایل و با اشعار و عبیات و اصوات خانده میشه که غالبا انسان به طرف گمراهی میکشاند برای انسان پیام باطل دارد صفت زنا و دخترای نامحرم بر از بیان میکند تا شهوت از ای در حرکت بیر و یا ای که اونا را به طرف شراب و قمار و زنا کش میکنه. بچه جوان شوقی دو چشمانت شرابی چرس و بنگ تا بزن. این موسیقی است که انسان به گمراهی و به جهالت کش میکنه. انسان به مخدرات جلب میکنه. مخالف احکام قرآن انسان به یه که به حق دعوت بکنه و با باطل دعوت میکنه. این موسیقی مطلقاً حرام است. همچنان در جمله موسیقی حرام و حدیث شریف است. یک کسی صدای یک دختر قینه در عربی دختر آوازخانه میگه کسی که یک دختر یا آواز... زن آوازخوان از صدایش میشنوه در دنیا در روز آخرت خداوند متعال گوشایش را سرب پر می‌کنم و سرب جوش داده شده تا که بفهمم عذاب خودم دوم قسم یک قسم از وسایل و چیزهای موسیقی است که او را علما میگن حلال است که به نام دف یا دایره در محافل نکاح به خاطر اعلان نکاح استعمال میشن و در اونجا اشعار و ابیات گفته میشه که از طرف بعضی از جوانا و از طرف بعضی طفل های خرد ای میشه که در اونجا به منکر و به بدی ها دعوت نمیکنن بلکه شهکار و حماسه های مسلمان ها را بیان میکنن تا اینکه که مردم به طرف از او چیز شون ایره میگن موسیقی درست و جایز است سوم موسیقی که احيانا بعضی از متص... متصویفین او را استعمال میکنن امام قرطبی میگه که این هم استخدام آیات قرآن در بین وسائل شیطانی ای هم یک نوه عدم جواز میگه ای هم حرام است چار... قسم دیگه چیه است که بعضی کسا آوردن موسیقی دانا و آوردن دیگه قسمشی هست که موسیقی که سبب رد شهادت میشه که شهادت از اونا در پیش قاضی قبول نمیشه بخاطر خاطر این که ای در حکم فصاق میرن او میگه شهادت کسی که خودش موسیقی میخوانه و در محفلا و یا هم میرقزه دگه قسم موسیقی است که با انسان را به دیاست میکشه او انسانه که در جمله دایوس ها حساب میشه او کیسته؟ او کسی هست که لایت خلال جنت اثنان در جنت دو انسان داخل نمیشه الجاسوس و اول کسی که جاسوسی مسلمان ها پیش غیر مسلمان ها میکنه جاسوسی مسلمان ها میبره به کافرها و رزرامه که اینی مسلمان اینی قسم اینی قسم است این جاسوسی است که ای از جنت خدا محروم میشن و قسم دومش که یوز کسایی هستند که خانمهایشان در قسمت خانمها اینا به تفاوت هستن چیره ها و تصویر ها و فیلم های خانمهای خدا و مردم های دیگه تقدیم میکنه و یا خانم خدا برای یک معسیسی بیگانه و یا شرکت بیگانه و مرد های بیگانه روان میکنن تا در خدمت از باشه و خودش قرار چارزانو در خانه ش یا کسی که در قسمت دختر و خانم و مادر و دختر خود خواهر خود به تفاوت است آنها را در هر حالت منکر که میبینه تایید میکنه در ای قسمت اینا رو میگن اینا دیوز حساب میشن همچنان یکی از دیاست ها که اینجا در قسمت موسیقی است کسانی در جمله دیوز حساب میشن که خودشان با پول خود وسائل موسیقی رو با همراه زنهای رقاسه و بدکاره و مردمه در شب آروسی و شیرنی کوری خود مشغول فساد میکنن ای کسی که زن رقاسه رو میره و میرخ این ای هم در روز آخرت در جمله دیوز ها نشر می الجنة الثنان الجاسوس والديوس قسمت دیگه که در جمله اسراف به حساب میعه و خود انسان دال است و انسان در جمله گمراه کنندگاه هست کسانی هستند که به ایوززی که 18 هزار و بیست هزار و بیست هزار, هزار خود در راه خدا مصرف بکنن و در شبه که محفل داره در اونجا برنامه های درستی داشته باشه که مطابق سنت پیغمبر و قرآن ازیم باشد شان باشه در اونجا یک از از های کار رو میخواه و باز انسان های شراب که باز او با شراب میخوره و برای زنا موسیقی میزنه این انسانه که پول خود در رای زنا مصرف میکنه در حقیقت افراد کرده و در جمله انسان های مبذر یا کار میشه که این المبذرین کان و اخوان شیاطین انسان هایی که مصرف زیاد میکنن بی جا مصرف میکنن پول خوده اینا برادرای شیطان هستن وامینان ناسی و بعضی از مردم آن اصفاتی ای کسانی است که آن در مقابل محسینین قرار دارند. کسانی که در مقابل مفسین قرار دارند، دارن، از رحمت خداوند محروم هستند کی هستن؟ اول صفاتشان میشه شریله و الحدیث. کسانی که لحی حدیث خریداری میکنند، چیزهای بیهوده را خریداری میکنند، لیودل اعنصایی الله به علم، تاک مردم آن گمره بسازند از راه خدا بدون علم. تا. که بر اولاد خود لحویات خریداری میکنه سیدی های گمراهی و رقص و تصویر های ناجائز و رقاصه های ناجائز ایره خریداری میکنه و در خانه خود گمراه میکنه امز... امراه اعضای فامیل خود را در حالی که برای یک پدر مسلمان گفته شده که یا ایوهالدین آمنو ای کسانی که شما ایمان آورده اید قو انفوسکم و اهلیکم نارا شما نفستان را و اهل فامیلتان را از آتش دوزخ نجات بتین شما کوشش کنین که سفیر انسانیت صلح بر فامیل و به اعضا و به با تان باشین نه که شما به فامیل خود فامیلتان به گمراهی سوق بتین و, من و بعضی از کسانی که محسن نیستند و خلاف محسنین کار میکنند کسانی هستند که یشتری لحوال حدیث میخرند خریداری میکنند یا بدل میکنند حق و باطل امور منفی را خریداری میکنند لیدل عن سبیل الله به غیر علم تا که گمراه کنند مردم را از راه خدا بدون علم در حال که خودش در باری ازی فکر نمیکنند به تفاوت از بسیاری کسا که قسمت توجه نمیکن. کنم و بی‌دانش و جهالتی کار می کنم از این خاطر در جمله کسانی که در لیست غیر محسنین اس قرار می گیرند و ها حضو حزو دو میه انسان های غیر و غیر محسن کسانی که ضد محسنین هستند صفت دیگه چیست چی است که و یتخذاها حزو و راه خدا را مسخره میکنه وقتی برشان حقیقت های قرآنی بیان میشه باز اینا کس... کارشان چیست مسخرگی مسخره میکنه اگر یک جوان دوستش برش بگه که نماز بخوان سر ازو مسخره گی میکنه اگر دوستش در اتاق برش بره کجا بودی ما در درس تفسیر قرار داشتم سر از زوخ خنده میکنه و او را مسخره می سازه. سر مسلمان مسخرگی میکنه سر لنگی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است سر ازی مسخرگی میکنه اینا محسن نیستن ضد مؤمنین و محسن قرار دارند سر ریش اگر خودش نمی کسی ریش گناهگار میشه اما کسی که مسخره میکنه سر ریش که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است ای در جمله غیر مؤمنین و غیر محسنین شامل میشه بازی محسن خدا نگویید دیگه وقتی که سر احکام خدا سر نماز سر روزه است سر عبادات سر قران سر حدیث پیغمبر یا چی میکنن ایره مسخره میگیرن سر از اون مسخره گی میکنن انسان متدین مسخره گی میکنن احکام خداوند مسخره گی میکنن این صفت دیگه غیر محسینت اولای که ای که بر ضد قرار جان چی جزاء دارن لهم عذاب و نشان عذاب است که موهین و اهانت کننده یعنی در روز آخرت تنها عذاب فیزیکی و جسدی بر از اینا داده نمیشه بلکه عذاب احزاب... عذاب روحی و عذاب روانی بر از این ادا میشد در اونج بسیار اهانت میشن در مقابل تمامی مخلوقات شما کسایی نبودین که به قرآن روش خند میزدین شما کسایی نبودین که به سنت پیغمبر روش خند میزدین او خاطر برای این تایف مردم مردما اول بسیار اهانت میشن توهین میشن و عذاب اهانت بار بر از داده میشن